خودآگاهی چیست اولین و مهمترین مهارت خودآگاهی یا خودشناسی است خودآگاهی مهارتی است که به شما کمک می کند تا بتوانید شناخت بیشتری در مورد خودتان ها، نیازها ها، اهداف نقاط قوت نقاط قابل بهبود احساسها ها و هویت خودتان بیابید هرچه بیشتر و بهتر خودتان را بشناسید بهتر میتوانید را که هستید بپذیرید و یا تغییر دهید این توانایی در برخی منابع با عنوان خودشناسی و خودکاوی نیز معرفی شده است انواع خداگاهی خودفیزیکی به تصویری گفته میشود که افراد از ظاهر فیزیکی خود دارند خود جنسی تصور یا برداشتی است که هرکس از هویت جنسی و تمایلات جنسی خود دارد خود اجتماعی به تصوری که هر شخص از جایگاه اجتماعیش دارد گفته می شود خود معنوی تصور شخص از اعتقاداتی که معمولا به زندگی و باورهای مذهبی او معنا می بخشد خود تاریک بخشی از وجود و جنبه خاصی از خود که در برگیرنده اسرار افراد است خود آرمانی همان چیزی که هر شخص در زندگی آرزو دارد باشد یا احساس می کند باید باشد خود واقعی خود واقعی همان چیزی است که فرد اکنون هست، شامل تمام نقاط مثبت و منفی. چرا باید خودمان را به درستی بشناسیم؟ برای رسیدن به خداگاهی، باید در زمینه تمام اجزای خداگاهی که ذکر کردیم به شناخت برسید. همچنین به درک درستی از انواع خداگاهی برسید تا بتوانید به بخشهای مختلف وجودتان آگاهی پیدا کنید. تا زمانی که احساسات خود را نشناسیم چگونه می توانیم آنها را پیش بینی و در صورت لزوم آنها را ابراز کنترل یا مهار کنیم اگر از انواع حیجان آگاهی نداشته باشیم چطور می توانیم هنگام برقراری ارتباط با دیگران و در محیطهای های اجتماعی هیجاناتمان را ابراز یا مهار کنیم مثلا تا زمانی که ندانیم عصبانیت چیست چرا عصبانی می شویم در چه هایی بیشتر عصبانه می‌شویم و برای جلوگیری از خشونت و عصبانیت چه باید کرد؟ چطور می‌توانیم خشم خود را مهار و کنترل کنیم؟ در صورتی که ندانیم نقاط قوتمان چیست، نمی‌توانیم آنها را بهبود بخشیم. همچنین اگر نقطه ضعف‌هایمان را نشناسیم، نمی‌توانیم آنها را برطرف کنیم. اگر استعدادها و توانمندی‌هایمان را نشناسیم، اگر استعدادها و توانمندی‌هایمان را نشناسیم و ندانیم موفقیت ها و دستاورت در زندگی چه بوده به خودباوری نمی و نمی به موفقیت های بزرگتر دست پیدا کنیم اگر باورهایمان را نشناسیم نمی توانیم را در زندگی تعریف کنیم دست به انتخاب بزنیم صحیح و منطقی تصمیم گیری کنیم و در جهت رشد و پیشرفت گام برداریم رسیدن؟ رسیدن به خداگاهی چه فوایدی دارد؟ با کسب آگاهی درباره تمام مواردی که در بالا اشاره کردیم می توانیم به شناخت صحیحی از خود واقعیمان برسیم و خودمان را بپذیریم. خود آرمانیمان را بشناسیم. هدفهای کتاه مدت و بلند بلندمدت زندگیمان را به درستی تعیین و برای رسیدن به آنها تلاش کنیم. پرسشهای فلسفی و های زندگی را از منظر خود پاسخ دهیم و روند زندگی را در راستای ارزشهایمان پیش ببریم. چطور به خداگاهی برسیم برای اینکه بتوانیم به این مهارت برسیم باید با اجزای خداگاهی آشنا شویم یک شناخت ویژگی های شخصیتی شخصیت ما مجموعی از احساسات، ها، افکار و واکنش‌ها و رفتارهاست که در طول دوره رشد در ما شکل می‌گیرد و تقریبا در طول زندگی الگوی ثابتی دارند مواردی مثل اینکه هنگام عصبانیت چه واکنشی نشان میدهیم یا اینکه هنگامی که برای بار اول فردی را میبینیم با او چگونه رفتار میکنیم یا مثلا وقتی کسی به ما محبت میکند چه برداشتی از رفتار او میکنیم و غیره دو شناخت نقاط قوت در وجود همه ما یک یکسری ویژگیها و خصوصیات مثبت وجود دارد که برخی از آنها را به خوبی میشناسیم و به آنها آگاهیم و بعضی دیگر را به خوبی نمیشناسیم و باید با افزایش دانش و آگاهی و همچنین کمک گرفتن از دیگران به وجود آنها در خود پی ببریم. 3. شناخت نقاط ضعف. طبیعتا همه افراد علاوه بر نقاط قوت، نقاط ضعفی هم دارند. چون توانایی انسان محدود است، از این رو در بعضی موارد قوی و در برخی موارد ضعیفتر عمل کند. طبیعتا پی بردن به نقاط ضعف سخت تر از نقاط قوت است چون اعتراف کردن به آن کار مشکل تریست از این رو برای یافتن نقاط ضعف خود دانش و آگاهیتان درباره مفاهیمی مثل خودپنداره، عزت نفس، اعتماد به نفس و واقع بینی را افزایش دهید و با تحلیل واکنشها و هایتان در موقعیت‌های چالش برانگیز زندگی و مشکلات و سختی‌ها به گونه‌ای واقع بینانه آنها را در خود کشف کنید چهار شناخت ها و استعدادها همه ی ما دارای استعدادهای بلقوه و همچنین ها و مهارت‌هایی هستیم که سبب شدهاند در زندگی به هایی دست پیدا کنیم مثل داشتن روابط اجتماعی خوب، گذشت و فداکاری، داشتن استعداد در انجام کارهای هنری و غیره. پنج، شناخت پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها همه افراد در طول زندگی توانستند در زمینه‌های مختلف هایی را به دست بیاورند. هرچه افراد بتوانند بیشتر و بهتر خود را بپذیرند، واقع‌بینانه‌تر می‌توانند به شناخت پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایشان در زندگی روزمرهشان برسند. شیش شناخت نیازها و خواسته ها. نیازها آن دست از الزامات هستند که برای وجود و بقا لازم و ضروریند. خواسته ها چیزی فراتر از نیاز است. به نیازهای خود انسان بستگی دارد در واقع خواسته ها روش های برآورده کردن نیازها هستند ما با رسیدن به خواسته ها نیازهای اساسی ترمان را برآورده میکنیم همه انسان ها باید نیازها و خواسته خود را بشناسند تا بتوانند در جهت برآورده کردن نیازها و رسیدن به خواسته ها از طریق سالم و درست گام بردارند هفت شناخت نگرش ها و باورها باورها یا ها اندیشهای هستند که آنها را درست و صحیح میدانیم ما درباره موضوعات و مسائل مختلف باورها و نگرش های متفاوتی داریم و عملکرد ما در زندگی بر مبنای باورهایمان است. انسان از لحظه ای که متولد می شود شروع به یاد گرفتن می کند علاوه بر راه رفتن و حرف زدن از آموزه های والدین و اطرافیان باورهایش شکل می گیرد و در گذر زمان در او نادی نمی باورها دو نوع هستند باورهای منطقی و باورهای غیر منطقی هر چه باورهایمان را بیشتر بشناسیم بهتر می توانیم باورهای منطقی و غیر منطقیمان را از هم تفکیک و باورهای منطقی و نیروبخش را جایگزین باورهای غیر منطقی و محدود کننده کنیم 8 شناخت ارزش ها ارزش یعنی هر چیزی که برای ما خیلی مهم باشد خیلی از افراد ارزش را با آرزو یا هدف اشتباه می گیرند. اما ارزش با هدف متفاوت است مسیر زندگی هر کسی بر اساس ارزش ها و آلویت های ارزشی او مشخص می شود در واقع انسان ها در زندگی بر اساس ارزش هایشان انتخاب ها، تصمیم ها و اقداماتشان را تعیین می کنند به عبارتی دیگر می توان گفت ارزش ها ملاک هستند که بر اساس آنها فرد باورها، افکار و باورهایش را ارزیابی می‌کند. 9 شناخت اهداف. اهداف همان خواسته‌هایی هستند که می‌خواهیم در زندگی به آنها برسیم. هدف خواسته واضح دقیق و روشن از وضعیتی است که می‌خواهیم در آینده داشته باشیم و ذهنمان مدام درگیر آن است. داشتن هدف در زندگی مهم است چون بدون هدف هر حرکت معنایی ندارد. اگر هدف خاصی در زندگی نداشته باشیم و ندانیم هدفمان در زندگی چیست تقریبا عمرمان به بیهودگی خواهد گذشت و هیچ تلاشی در جهت رسیدن به اهداف هم نخواهیم کرد و حرف پایانی رسیدن به خداگاهی کامل و اصلاح تمامی تعصبات شناختی بینهایت دشوار است اما این دشواری نباید باعث دست کشیدن از تلاش شود درست است که نمیشود تک تک مشکلات زندگیتان را حل کنید اما با انجام همین تمرینات ساده و ایجاد تغییراتی جزئی نیز میتوانید کیفیت زندگی خود را تا حدی بهبود ببخشید